حکایت پادشاهی به کشتن بیگناهی فرمان داد. گفت ای منک به موجب خشمین که را بر من است آزار خود مجول که این عقوبت بر من به یک نفس به و به آن بر تو جاوید بماند. دوران بغا چو باد سهرا بگذشت. تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت پنداشت ستمگر که جفا بر ما کرد در گردن او بماند و بر ما بگذشت ملک را نصیحت او سودمند آمد و از سر خوند او برخاست